الحمد لله رب العالمين الله الله در سنت آخری که در عبارات مرحوم استرابادی بود یکی لاجب استحسان یک چون احساله البته چون عبارت خدا آمدی رو خوندیم نروم شد که تغییر استحسان با که در عبارات فوقهای مشهور احسانت آمده خیلی مفهوم روشنی واضحی هنوز نداری که مرادشون دقیقا از این استحسان چیه بسید اون که میشه من حیط مجموع یا آثاری داره من برای این جنگ رو خیلی که می کنی که میشه اون که من حیط مجموع از کلمات سندر در استحسان در وقت این که ها میکردن گاهی اوقات بعد در مصابه بین مردم جامی افته عمل میکنن لیکن بخواهد روی دوابط شرعی درستش بکنن نمیشه مثلا در همون حمامی که ایشون گفت که ما دیوزم از کردم در جامعه های خود ما هم داریم از کردم دیوز مثالی خارجی خود من که مثلا احفرم دکه اندی کسدن به مالکه اندی اینا هم هست اینا آمدن گفتن که این باز دوابطه نمیسازه بازتر مالون باشه صدر این باشه. وقد نشان اشکال سر این اینا اولا این روزی که مستقلاً قبول کردن در حقیقت یک نوع آزادی تقلیدی در جامعه اسلامی جا افتاده روی ظواهر نمی‌تون سر کار گذاشتون ظاهراً مدارکشون از استصحاب من هي سلم و اینه در حقیقت اون استصحاب داخلی ولو عباراتشون مختلفه و این ما هم داریم مثلا فرصینا در جامعه های اسلامی خیلی از مثالهی که دیروز ارس کردیم در جامعه های اسلامی معاملات بانکی که افتاده با این خب میدونم خودشون که خیلی از این معاملات ردنگیه چوهه روا داریم فرصیم در جامعه های ما مثلا در جامعه شیعه امام مسال یاد سنیا میاد حتی دخان رو جز موفقتر است سیگار کشیدن رو تو ماه هم زمان جزو خب این شبه داره که دخان دوز و شور و این هانی دیگه چون دخان یا دودی که انسان می‌کشه از یک مزار خاصی به ریه می‌ره. رفیم با قضا یا با نوشیدنی که هم مغزش فهمونه از اون به معلق مدرکی در ریه نداره. اصلا مگراشون با هم فهم میکنه هم با هم فهم میکنه پس این انسان سیگار بگیشه داخل رویه بکنه این رفتی به غذا خوردنی که از میری مرینه رو تا هم بگه که میفهم میکنن لیکن این مسئله افصاده جا که مفتتر است در ماه هر روزن از اگر من گاغاییم رو شابه مثلا اون طریق در مستمسک از راه ارتکاز متشرعه پیش آمده که در ارتکاز متشعرعه این را به در متشعرعه مفتر میدید ازگر نجرب شکل در یه ماه حکیم ارتکاز که ارتکاز متشعرعه این در حیفت باید یه باید که در محیط علمی متعارف اهل سنت یعنی متعارب به بین مسلمان ها بوده یه نوع در استحسانه مثلا معاملات بانکی رو انجام میرن خب اگه هم رو قبائل درستان مشکل داره دیگه مثلا پس در در و تقالید خود ما تو الیام احزازالی زنجیر میزن خب ما میدونیم که زنجیر در این روایت نید اونی که را که بردانی رفتید و شهد آسر آسر مسیار فراغانه زیاره هرگزه است و مسئله یه روایت واحده هسته در سین زدنه مثل خود خود خود بود خسنی بود روایت واحده است و واقعه هم از اما عنوان زنجیر نیست اما خب به شیعه جاسته از که از مراسم غزم همین زنجیر زدن بوده بعد میومدن می‌خواستن بیان ما بیم همین زنجیر بزنن به عنوان مستحب بدونیم نه به عنوان اظهار عز برفی به شهر خوب دقت کنید اینا اولا در اصولی یک مسئله رو به نام استحسان باز کردن این استحسان در حقیقت یک مجموعه از آداب و توالی و الان می سوید مدتی محترم دیگه مثلا 4 تا 5 تا کتاب واسه داشت مثلا وقتی ایام هج میشه، یهو مورد صفر بود تشکیلاتی مثلا امیر الهاج مصر و انور الهاج شام و انور کجا را رو دادن با و تشکیلاتی رو شخص ایو کرد از ذلك بسائل برای که برن مکه کسری مکه رو کسری کرده و میو همه خب این رخص بود تو دلیل روایت انگار بزن باید از دورها اهل سنن از این همچین چیزی در روایت اینا نباید اینا رو با کاشند تو احسان. احسان مجموعه اموری که او یا آداب و تفاسیر تو یک جامعه اسلامی جامعه مسلمانها امر دوباره اگر بخوایم مذاقی شرکیش بکنیم گیر بلوی کرده و سر ماملاست بانگی این تو جامعه جالس تو کشور اعربی تو کشور اسلامی ماملاست فنجی بانکی وجود داره که می‌جوید بگذرسیم. این اگر با خود همین که الان در قطعه ما هست یعنی رحمه مده کلیش رحمه رو بشن خب این اگر بخویم با قواهد فقی درسته نمیاد. درسته نمیان یه مردم شانیه شده مردم انجام میدن درست تا روش کردن پس میتونی روش تکیبه آثار دهیم به این من محصان عرض کردم که این روشن بشه استحسان در حیقت از هستن هم تفاصیل و مختلفی داشته از تو استرسان برای زدن زوقیات و اتفاقی اتفاقی ایچیزی رو زوقن میفرم اما دریم میتونه با لیکن به ذهن انسان میاد که با اون شباهد و مثالها و حرفای ایتزادن بهترین نقطش همین باشه یعنی مستقصنه با لیموسلمون یعنی اونه که در بین جامعه اسلامی جا افتاق مرد قبول واضع شد حالا این دیگه به عنوان مثلا یا باجبه یا مستر یا مسترود یا, یا حرام به همون تحقیقی که وجود داره این عنوان استحسان البته از اگر این رو ما با همین مقدار کافی بدونیم و بلاحات تاریخی از اولا خیلی از استلاحات که الان در فقر یا در اصول میاد. سعی میکنن که ریشه قرآنی داشته باشه مثلا ما در خودمون در مکاتبه فکری, فکری در شیعه داریم محطه به نامو گلو بریم گلو و گلور گلور غالیان و گلات اینها خب این اصل قرآنیش راجع که لا دیم یا اهل کتاب لا تقلیف شون در قرآن قلوب آمده لا تقلیفی دیمه کن در قرآن آمده این منشأ شده همین اصطلاح کسانی که آئر رقلوییت این یا سفات خدایی ازاد یا سفات و افعال ایلالی اینها رو به اصطلاح بگم گ کسی که اینا برای این علیه السلام صاحب میکنن خلاص لفظ استفسار هر هم و هرچی از قران گرفتن فای تبعون احسنن از کلمه تبعون احسنن این معنا رو گرفتن که این اصطلاح استفسار در اصول به اصطلاح پیدا کرده و به لحاظ روایت از هم که ذکر کردم روایتی است پیغمبر بعد تمام صحابه مسلمون فواب حسنون الی الله یا فواب الی الله حسن ریشش بود بعدها در قرم دوبون فوقهای احسنت دو علماشون مثل مالک و شاقی و ابو حنیک و اینها نسبتاً رو این معنی فقی مانوبر بیشتری دادن مثلا بیشتری کسی که بود استحسان کار کرده همون ابو حنیک خودشان خالق و قیاسه این استحسان هم در بود محرقه به قیاس مالک نسبتاً متوسطه شابی این رو متشددینه که از استحسان درست نیست من استحسانه برد شرح یا شرح این عبادت از شابی نفت که درود هر پر این طرح بعدها که یا آشوار خوبصونی ها مثل بقیه بیگه شرح ترکت این استحسان رو در حد حالا حرفی ابو حدیکن که کنار روشه ریش آبی یک ازدهیش رو اون رو به اجماع برگردونده. مثلا مستحسن اول مسلمون المسلمون در حد اجمال استحسان یک چیزه مستقلی نیست ارجاعی که به اجمال دادن لذا محتمت شده اگه در حد اجمال هستیل بجاتی به الله فلا این یک بسی که از بگیم این ارجاع دادن به یک نوع رعی و قیاس استحسان رو ارجاع دادن به رعی و قیاس تا خوب طبعا از مسئله هم مثلا با این تمییز من خدمتتون عرض کردم این واقعا تو جامعه ما کاربرد داره یه چیزایی بین مسلمان ها راه میوپته مثلا این بانک پولیزان بانکی و مثال مسائل زنجیری که الان عرض کردم آیا بر میشه این رو ما حجت قرار بدیم ها, ها تمام بر میشه حکم شرعی رو با این دوران چون مستهتن آقا مسلمون. البته رواید مستهتن آقا المسلمون کلن از طریق ما نیاماده به ایسوش ما نیاماده احتمال این که پیغمبر هم فرموده باشه بسیار بعیده تا از خوضی ها رو شهر این راجع به این مسئله استحسان از سر از کنل مرحوم مولا محمد امین سرابادی در اون مورد مدنی هم در قواتل قواتل مدنی رو هم جزء استحس در اصول هست و حکم اقریز برایی که منجا به قسم میشه از این استحسان در روایات ما نیامده در میان کلمات فوقهای ما نیامده و اون چه که الان بین ما بچه طلبه هایی با علمان بکنیم بین ما متعارفه به مجرد جریعادت در جامعه احکام الگایی عوض نمیشه اجماع هم محقق بشه اجماع پیش علمای شیعه اون ارزش رو نداره که خودشی که از مصادر تشریع باشه اگر ارجاعش به رعی و قیاس هم باشه که قیاس کلن پیش ما باطله ارجاعش به این نوش مثلا باشه زوق باشه اینو که به طریق اولا با ابطال قیاس اون هم به طریق اولا باطله و تحجیب بر مرموم محمد این استرابادی استحسان رو در اینجا در اداد این عدده بودم من برای اینکه مقدار مطلب روشن بشه و آقایم اگر مایل باشن در میان کتاب نسبتن عدیم احل نه توی این مواهز و آشنا شدنشون برای اینکه این مطالب سابقه های تاریخیش چی بوده مایل باشن همین کتاب احکام ابن حد ابن حد بیرد اون محل لاب. کتاب زیاد داره خیلی پر کاره صاحباً مره فوق العاده این دهاز من دلست این کتاب ببینه محل احکام که اصول احکام داره که دستا در دو جلد در هشت یه در دو مجلد در هشت جزئه این رو در جلد سوچان جلد آخری شماره صفحاتش هم یکی صفحه 187 187 خیلی طولانی نوشته و اگر این پیدا بکنن این بسیار کتاب در این جهت چون مسئله رعی و قیاس در بین اهل سنت دیگه کاملا جا افتاده است مثلا ابو حنیفه و ایشون به شدت با اون مخالفه ایشون با رعی و قیاس و با تمام این حرفا به شدت مخالفه از این جهت و بعدشم این مقدار زیادی کلمات صحابه و بعد کلمات فقها ها و علمه رو عورده از این جهت خیلی خودشنان معاصر شیخ توسیه تقریباً چهار سات پنجر بله از این جهت خیلی کتاب مفیدیه این بحثی که در دا این داره همون حرف های سی شیعه میزن لیکن خب ایشون بگه چون اون طرف بوده طرف احسان نه خیلی تنده یعنی در حمله کردن به اونها و مخصوصا اصلا به نهر سنت از به نهر سنت میگن که زبان ابن هر از شمشیر حجاش تیستر خیلی در احانت کردن و بیرا گفتن و هم بزرگان از کن و اینا خیلی در زبانش بازه میشون. خیلی تند صحبت میکنه. و خیلی اقوال و کلمات اوورده کلمات موافقین با رو اوورده کلمات مخالفین رو اوورده خیلی نصافت و مخصوصا مخصوصا این نکته که ایشون در اینجا داره اون نکته مهمش چون کلمات رو نمی کنه و از صحابه و قید صحابه و اینها برای ماها هم برای اطلاع برنی که اصلا این چه بوده چن این چی چیزی شده و این مثلا این مسائل مثل را و قیاس مثلا چطور در اسلام پیدا شده در همین صفحه یک ایشون نرم میکنه ایشون چه فلسفه پنجاه بوده میشه که توسی هم توی تنبیه باعث سند کامل نرم میکنه از زمان خودش داره امام ایشون هم سند این سندها رو کامل نرم میکنه بله یشون با سنده کامل نرو میکنه کنه تا از صحیانه نو اینه این صحیانه نو اینه که از بزرگان حدیث و علم و فقه و اینها به نهره سنت خیلی در جرده خدمت به هم صادقا می رسید جز به اول این روزی اونخه که ملاوی همون خالفه با تشکیلات بنی عباس بوده و در تسطور بدن در حال خونه تسطوری سترن توفیده مازال امر ناس معتدل خیلی لطیفه که اصلا معنی میشه تاریخ رسته کی بوده مازال امر الناس معتدلا درست بود قضایا درست بود حتی غیر الاله این تغییرات از اینجا شروع شد یک ابو حنیفه بلکوفه البتی البته همون عثمان بطیزی بطی به بصره و ربیعه به مدینه البته این خیلی کیری به کارو چپکی و کارو از اول با ربیعه رو میگم اصلا ربیعه چون مؤسس رائے بود و در مدینه بود و هم که شرع داشت و اون ربیعه مدرسه واصدا بیان است رائےش یعنی این دستگاه فکریش هم در مدینه پیشترم رائے روی با ربیعه درس کردن ابو حنیفه شاگرد ربیع است او از اون گرفته از رائے اساسا تولدش در مدینه است لکن انتشارش در کوفه هست. الان در اهل کوفه در بعد نه. وقتی میگن مکتب رعی مرادشون کوپه است. مدرسه چادر این کوپه و مدرسه تا سنه مدینه. خوب دقت بکنید. در این ها نهر از مدینه شروع شد. اما در مدینه منتشر نشد. انتشارش خیلی تعبیر عجیبه. این خیلی نکته زریفید. اونم قاعدش مثل سفیانه بنویینه که از بزرگان اونهاست. مازاد هم و ناس معتدرم. خودشون باعث این و خیاس و به صحابون ها خیلی معلوم میشه که اصلا نبوده در زمان صحابه هم نبوده این حرف دروغه است که بعدا در اومده الان این خیلی عجیبه ما واقعا برای ما خیلی تعجب که منشاء خرابی در دین رو به این سن نفر نسبت میده ابو خنیفه در کوفه عثمان بطی در دمشق و ربیع الصبري در مدینه به هر حال این بحثی که ایشان دارن خیلی بحث لطیفیه خیلی کلانیه ایشون ابن هر چون ابن هر واقعا مثل این کاری کنار هم ها دارن خب خودش اینا رو اسلام قربی میگن چون ما رو هم درست رو اسلام مالیم هست خیلی آدم خوششته خصوصا مجموعه علمانی مغاربه ما بسیار اسلامی های یعنی هم مثل ابن خربون مثل ابن به اصطلاح خلقه خیلی ماشاءالله هست همین خود ابن عربی معروف میشه اندلسیه خود ابن حد زیادی از این زیادی از اونها که مرور کردن ابن حد می‌گه که از هست از خاندان بنی هم هست نشدن چون بنی امیه در اندلس حکومت کرده این دولت اسلامی اندلس از اولش از دست بنی امیه تشکیل میه مرون یک دولت ارزش بودن اما زمان بنی امیه به طور تحت شده بن قرار کرده و از یکین بقایهاشون رفتن به طرف اندرست حکومت اسلامی اندرست و زدول مال بنی بود خب این آقا نجازن از بنی اومیه از نسل بنی اومیه الان اما مرد پرکاریه و در کتاب محلاشون که نرز کردن برد از مسائل رو م... کتاب محلاش یک نواق نیست اگر یک نواق که اون برو خیلی خوب برد از مسائل رابعا پرقلاد کاری کنیست نه در خبش کسی مثل اون دویو نبرد برداشه خیلی احاطه عجیبی یعنی واقعا انسان نه این مسال رکھ کرده نه مشخصی که خیلی مسلطه میسته در بعضی از مساله زیاده اون مسالی که کاملا مسلطه اونم زیاده نه اینطلا تک باشه خیلی مفصل وارد میشه اینساقا تعجب میکنه از خفصات مسادر این شخص و معلومات این شم و البته صاحب رأیم هست یعنی این در یه حدیث که آراء خودش رو مطرح میکنه و و هم آراش خیلی پجورهی با ها مثلا ایشون در همین صفحه صدر نردسه از خواهد اشتهادشتون خودشون میشون شئید می شون مقاید و ایشون در همین صفحه صدر نردسه که وفی ها اکرامتوب نعمار و غلومون کرال حدیث جدن چندن دمون کرده به اکرمه سبن اما این محفره ای که که چاپ کرده هاشهشون سبحان الله <تصفيق> این اکرمه و ابن المعین و ابن المدینی و داکتنی و عجی و عبوده و اون عبود و چطوری ترجمی هسته چطور یک دفن یک تذیف میکنه که همه بزرگان توفیل شده یک درم کرده مثل بخاری و این داره اینه از این کارها داره خیلی عجیبه واقعا من تعجب آورشه محض نذ البته بعد دقیقش هم فکر می‌کنه می‌گه به که هاشمی رضا چطور دیگه منافق بکنه از حدیث اینجوری یه حدیث که کذب و مهده می‌کنه می نشه چون چون می نشه به قول میگه این شخص دیگه حدیثی نرفته که و محض یا خودش رو گفته از دروغون حرفیده بلاشه هیچ چون بقیه سر خوبه قبلش رو بعدش خوبه پس یا خودش دروغ گفته یا قضیه این رو که تایید شده و نه معلومه که تجوهر که این راست میگه دیگه نه با ایشون حدیث زمان معروفه من دیگه نمیخوام وارد اون بحث خیلی میخوام بگم قدرت فکریش رو که این مرغا استقلال مظز میشیم هم بگم استقلال رنگش تا اینجا که مقابل بخاری و مسلم نیست نه خلاص لوکی دست دسته دوم و دست دوم مقابل نیسته در میده و نظر و در کسوره متأخر اهل سنت هم بوش حساب میکنن اما رای میکنند این قبول نمیکنند من اما به لحاظ ایشان حساب نظر میزنم این مسائل حالا اون کار لطیفی که ایشان در این اینجا کرده صفحه ی شده هشته هر از این میخواد مینوکته کریک به حالتی پیدا بشه برای شما مسائل اهل سنت و تاریخش، ایشون گفته فل استحکام، ولی استنباط و رای. اینو خیلی مفیده، اینو فیلم مخصوصن. چون شکر اصرار داره که استنبال با یکی این استنبال چون تو عبارت ما هم آمده یه مداران اخباری رو میگه حساسیت میشه داده این یک نکته بسیار در دو هم حالت این درست ما هم اعتقادون همینه در اصول رفقه اسلامی استنبال تو مرادت رعی میگردن خب این کنان میدونه استحسان و استنبال تو و دفتار کل داره که تمام قیاد هم جدا گرفت بیشان حواسش کاملا جمعه بعد از خودش هم میگه دو دو اون این نماجه معناها کلا بودی باقی ماه که دیما افراز نکنه که باستحسان تو حسول یک چیدیه رعی چیدیه لعنه ها کلها الفاظ و واقعه هست این نمی خود بوده استحسان و, استحسان و لا فرق بینشه من المراضده ها به این الفاظ به حکم و به ما رعا و الحاکم اصلح فلعاقبه و فلحام این خلاصه استخدام برد هرچی رو فقیق به نظرش اصلح کشه استاد حکم کنه و حاظا و حوال ما لما رعا برعی منداله قال المالکیون وقت اقوال زیست میکنه من احسن اقوالی که نگاه میکنیم از خواهات به استحسان خیلی کسیر مسائله من با سند نقل میخوام نقل قال ماله تس ات و اعشادل ام از دیگه این شاده من نگوزم ردا کندم تو واقعا اینا مردم میشه مبادی علمیشون از کجا گرفته تس ات و به نقل خیلی خیلی ابرتامیزه چه مثلا اون میشه در در سالش و آثار و مرآل و نقصده در, در با استحصان و رعی سرس افرحشار علم علم استحصان از که این هر من اینجا بارد نیمشم این روزگیشت رو نه میدم کلمه علم رو در میان خودمار بیشتر تو مسائل و به کار میباردن اون داری که ما اصطراحا فهمیی فهم علم نمیگفتن فهم نمیگفتن چرا م نورد در فرش افرحسان باشه خیلی پر و پلاس. بعد بعد عبارات دیگه جابه من نمیخواب وعمل هنفیون فعکس و فیه جدن راست نمیخیر ابو احنیف زیاد و انکره و شافیون و انکره من ازها و من در برمیت هنیت محمد تحابی خب بعد ایشون میکنه احتجاجون چون خوندم جوز حیات به آن احسنه آیه مبارکی. ایشون بس جواب لکیفی بی بی بس با... بعد جواب لطیفی میده. وی نبی خود بین آیات مسکنده. اما اینه احسنه آنالگول که اینجا میگه مدل وعده روشنیه. میگه وفادار احتجاج، اون حیات به آن احسنه گرفتن استسان. ایشون که وفادار علیه علیهیم لا لاله مو، لان الله سوالالام یا بول حیات به آن مسح سانو. میگه چه متفق نشیدی. خود را احسن و احسن،, احسن القول قول الله و رسوله. ناراضی نیست. خیلی داریم و انما قال خیلی دکیفین است و اینم آقایل با ورد و احسن القول و احسن لاقبال موارد و کلام الرسول. نه اصلا قول وات آ کل جوببللا گفت سید کلمون متن اون وان خیلی افاً خوش او را جواب خیلی رووشن و خیلی واضحه و میگه آقا اول اجاع مستسین این کل مسلوم تقیص خب کردبار قرآن رو صنت باشه. و منقال به راه ها را برای مسلن تووا برها بریر رو مراجع میکنی مثل از داری اسلام؟ بله خارجه بعد ت ف بحث ادامه میده که من دیگه میخوام وا اون برث باشم. مضاقن ایشون یک نقطه لکیفی رو داره باز نقطه دیگه وله انهو اصلا برای دیگه منر ماهان ان یکون الحمسی مستحسنان نمیشه هر دنبال اون استهدان ما روشه مندون برها له انهو لوکان داره لکان الله تعالی یکنه کنه کنه کنه کنه مالانوشیه وله لفتر یک ازید مثلا مالی که ما تو استهدان کردیم ابو هنیزم یه اینجور استحسان کردیم پس واضحیم حقی وجود نداره. این چی نیست؟ لبسل از الحقائق و لبسل از الحقائق و لتزاد در دلاغ شبیه مده هم من انشاءالا عرض میکنم و قارد از البرائی و لکه تعالی یعنی همون ها اختلاف این یکی استحسان میکنه ایتی ای الگی قدمه ها نانو ازامه ها نو محاضا لایه دوز زنهو لایه دوز و اصلا یک تقل استحسان و علماء کلهم علاقون الواقع بعد ایشون یه ای اختلاف موجود نیست بله بله میگه مال مالکی ها الى انغار بله خبت حالا ان یک اونال الله از داجن مرجودن الى استحسان دن و و این نماکان یک خونه حاضر یه نقطه لطیفی خیلی روش تکرار داره و نتیجه اینه که ایشون برای هم واقعی میدونه که من چند بار دادم و این نماکان یک و عبوه بالله لو دین و ناقصن. اگر دین ناقص مود برد فهم ما آقا به تامون لا مذیرفی مبیان کلو منسوسون علیه او مجما علی مچون صحابه من علی اصلا سوس نه و که نه صحابه صاحب و خودکار بودم. این اصلاحات توضیح آن علی, علی. من علی مجما آن علی. حالا معنای من استاد نشیعن من غیره. بلکه بل حق و حقق و استاد بحکم و باطل مود. و استاد نمان ناصر. یه هر کدیش از کلمات جسار هر با استحسان مردم عوض نشد بعد ایشون یه مقدار صحبت میکنه امده این من مخاطب نقصیه کندی رو چون دیروز خوندید وقتا جو خیل استحسان به قول نیجری علا السنته واقعه ماغعه المسلمون حسنن واقعه اندالله حسنن بعد این چون میاد الان در این کتب عقصه مدرانه هست و بعدشم این در مساجر زیادی وارد شد من گیره از احمد نهر کرده ایشون از مصند احمد نهر کرده از مصندق حاکن از این این نهار که این که من داشتم که نکره نگاره این چاپ دیگه مصندق باشه قبرانی در عصد نهر کرده حیثمی در مجموعه زباید نهر کرده و غال و رجال و موسقین حضرت رجال و موسقین معنیش این که حدیث توسیخ شده باشه. باشه بعد ایشون بگه ک ممکن است در مصالح صحبت‌ها رو, رو بشیم با اهل سنت و نعلم لعلا رسول الله من اشکال مهم حدیثی راست این مرفوع نیست این کلام برخی از صحابه است و زبان ان الذي به اسناد صحیح رسول الله و این ابن مسعود کی کلام ابن مسعوده علیت نی؟ من بیوستم خودم وید حلش رو گرفتیم بعد ایشون من عبدالله ابن مسعود فذ کرده کلام منفی فمراه مسلمونه. حسنانه او اندلاع حسن. بعد اگر ایشون بگه لحظه من و جنس ل لانهو انما يكون اصلاح اجماع المسلمين، این همین بود اشکالی که بیروز از به اصطلاح ما از ستاب آمدی هم نعمل که مراد اجماع اگر اجماع, اجماع باشه ایشون حجت نمیدونه اجواره مثل ما میدونیم مثل شیعه اجماع را حجت نمیدونه آمدی حجت نمیدونه ایشون نمیدونه لانهو لم یکون ما را آهو بحج المسلمی حسنا راقوب حسن این ما قال مرآل مسلم البته این یک ای نقصه ای داره باید اون نقصه ایشون تق... توضیح میداد که من از سرا ما تعاویلی که جمع داریم که در آنچه چه در برایات یا چه در خطاب یا غیر خطاب اینها بعضیاش هلالی هم یعنی یک نکته ای که من چند بار از سرا در قرآن کریم تعاویلی که میاد یک نواسته اما یکی، یکیش مثلا واجبه تر مثلا کفاری است یکیش واجبه این نیست یکیش برآمره مکلبی یکی برآمره نیست در تعاویر و قرآنی هر رو نیامده این رو ما با شباهد خارجی اتظهار کردیم مثلا یا ایال لگی نامنه آقای مستقل این وضعه همه مستقلون هست یا مثلا از ساره و از ساره به فرس و ایگه همون و دیگه همه نیست این و دیگه هر که دی این فقط اون کتابش به خساب مثل به... به نقطه کتابی مثل اونه اما اینجا واجبه چه با از اونجا واجبه اینی این یه نقطه من از سرم شباره تعاویر و برمانی قدران تعاویر ها در این جهت اختلاف دارن یعنی این رو باید صحیح از باید. مثلا مارعا همونسیمون حسن هم انحلالی یعنی شما این فقی حسن بدون اون فقی حسن هست مثل آیا ایوه الذین آمن و اقید مستلاته مارا مسلمون یا این از قدیل فخت ها و ها ما این از قدیل اون چیزی که به جامعه ای اسلام به افطلاح ماها در اصول آمن مجنوبی نه آمن این هست این تحبیر این تعبیر فخت مثلا مارا آن مسلمون این که باید ابن هرز میگو امتحاقا اگر ما باشیم و سبقاید خب مسلمون آمن باید انهلالی بشیم لکه چون به قراره ما را آقای مسلم با بابا ایندالله اونی که مناسب با سیاه که ابن حض فرمیده و اون جمع مسلمان هاست و متعرض این اجماع را هم که قبول نداره اجماع فقط خصوص اجماع از قبول داره بعد متعرض تفاصیل مفصلی در این جهب میشه که من دیگه اگر بخیل نقل بکنیم خیلی ماشاءالله طولانی میشه اون بحثا چه طولانیه بعد از اون متعرض استنباط میشن فقط می‌خوام عرض کنم استنباط هم از آیه ال علم الذین یک تنبسونهم ما چون کلمه استنباط هم گاهی تو روایات ما هست که توی عبارات ما هست که ما مثلا اهل استنباط میشیم مراد از استنباط این تا یه یه سلام خیلی طولانی میشه بحث ما تا اینجا این مطلب اونچن شد که امده دلیل در باب استحسان حضارات او بردن خیلی از این که بعدها خود و اصولی اختلاق دارن که حقیقت استحسان چیه اگر ما اینشون بعد اقوالی ها نرگرد در استحسان من نمیخوام اون ترد چون دیگر نرگرد اگر بخواهیم بگیم ظاهرن بهترین خلاصه تعریف همون حصیل در جامعه اسلامی جا افته مثل این خونه مثل معاملات بانکی که اگر بخوید صرف ثواب الزوائد رو بکنید منتج نمیشه با ثوابه خب طبعاً چنین چیزی ایجاد به تعرض داره خب پای نهشین خب چنین چیزی اصل اولی عدم حجیت و اصولا متجربی که یک عادتی بین جا جا مردم جایی و قیمه دونه حجت شرعی پیدا نمکنه این امر واضحه جایی هیچ گونه اوهامی نیست و چه نوکسی با زیاد با یه روایتی دلیل یا آیه کتابی چیزی پیدا بشه الا به هیچ وجه جای این مساله نیست و انصاف قدیه نه از آیه اقترون احسنه چین چیزی در میاد و نه از اون روایت ما را مسلمون حسن تا الله حسنان اون نقطه چینا میگن تقییه استحسان بکنه انصافا در میاد مضافا که حدیث کلام رسول الله نیست در مسایی در سنت کلام خود عبدالله مسعوده و در روایات ما هم چین چیزی وجود نداره بلکه ما اشکالی در به مرحوم مولا محمد امین کرده چرا بحث استحصال رو در اینجا آورده و یکی از نکات اشکال به آقایان اصولی ها کرده یه بعد از این مطلب و بعد از اگر آن داشت رخت کرده که پا پیدا تایید رو تو کامپیویتر یه بحثی هم راجع به مشغلت داره یکی بخوام بخوام توی میگه شه آیه همراه هم شورا بین هم. من هم همه هم هم شما میدونی که در ایران وقتی پارلمان یا مجلس ترسید شد در زمان مزر فردنی شد آیه که بهش تمثل کردن برای حجیت پارلمان و شورا مجلس شورا امرو شورا بینه هم بود نه شابه منطلح امرو شورا بینه از این استفاده که اگر مجمع این مجلسی تشریفی این حجت شبیه همیچه که می کردن گفتن این امرو هم شورا بینه یعنی آن وقت متعرض بشم چونه یک خاص خود رو ایشون آیه امروان شورا بینه هم به اون هم اعتراض میکنه به استظهار به اون آیه که با مشکلت مثلا مسلمان ها اگر متفق شدند، این منشه بهشون حجیت پیدا بکنه اون رو هم نگه حجیت نداره آیه امروان شورا بینه رو بیاره و شاگر هم به اون آیات هم ایشان اشکال میکنه به استدلال به اون آیه دیگه آنها احتراج بحث خاص خودشو داره یک وقت دیگه باز باز بحث شد قرار در بها ایشون به مناسبت که مناسبت با همون پارلمان های و مجالسی که فیدن در کشارستانی پیدا میشه و مقدار و حجیت رعی اینها که تا چه مقدار و حجیت دارن ایشون بگه از اون آیه این مطلب در محمد